بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله أمناء الله وحسبه وعيبته علمه ولا سيما الداية إلى سبيله والمنتقم من أعدائه مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا و وقائدا و ودليلا و حتى و دلیلا و عینا ارض فيها طویلا معجل فرجه و سهل مخرجه و من احسن اعوانه و انصاره و سلطانه تبریک ارز میکنم میلاد ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله عليها كه تدخلو به ها و شیعتون به اجمه هم جای خود و ما قومی ها یک حس دیگری داریم و یک امید خاصه بیشتر به بیبی بی حضرت محسومه که هر جا گیر کردیم نگاه همون به گنبد بیبی بی بی بود و ارزه ادب و, و درخواست از بیبی بی داشتیم خدمت سربران آرزم که فرمودن که حضور قیابا فراموش نشه ابتدای کلام خب هر اندیشه ای یک پیشینه و یک تاریخی داره برای اینکه بدانیم که یک اندیشه از کجا آمده هدفش چیه و معال قصه چیه موضوعش چیه و چگونه میتوان پیرامون اون صحبت کرد و بررسی کرد از نظر علمی باید تاریخچه رو شناخت یعنی چاره ای نیست که بعد بدانیم از کجا آمده است و ریشه این قصه چیه تفکرات و اندیشه هایی که در بین بشر هست خب یک سری ادیان آسمانی و یک سری فرقه هایی که داریم می‌بینیم در هند و چین و ماچین در هند که الحمدلله به قول اون دوستمون که سرزمین ادیان و و به تعبیر ناقص بنده حالا آقا تکمیل میفرمند استاد قندهاری یا نقایس بنده رو تذکر میفرمان هرچی چینی ها میخورند هندی ها می خلاصش اینه همین چیز خلاصه از میمون و گاب و اینها بگذاریم ولی خب بعضی از اندیشه ها در مذاهب و فرقه های واقعا بی بطه و بی اساس ریشه میگیره و دامنش رو پهن میکنه در اون قصه و اون بستر گای اوقات گا در ادیان آسمانی یک اندیشه هست مثل اعتقاد به معاد که در تمام اندیشه های آسمانی هست چه از مسیحیت چه یهود چه حتی زرتشت و اسلام که جای خود باید ببینیم که واقعا ریشه این اندیشه وحدت وجود در فرقه ها چگونه بوده و آیا جایگاهی در ادیان آسمانی دارد یا نه خب با این مقدمه مختصر کمتر وقت عزیزان رو بگیرم الحق و الانصاف خیلی خوشحالم امروز محضرهای استاد دکتر قندهاری هستم و مشتاق زیارتشون بودم حقیقتا استاد عضو حیط علمی دانشگاه آزاد اسلامی صاحب کتاب ها و اثرات واقعا ارزشمنده من واقعا از کتاب ادوار تاریخ تصوفشون لذت ها بردم الحق استاد تملق نمیگم واقعا لذت ها بردم. بعضی جاهاشم نقد داشتم استاد ولی خب اه... کتاب اصول و روش های آموزش توحیدی بر مبنای آموزه های قران کریم و اهل بیت علیهم و کتاب بررسی نظریات کلامی درباره رؤیت خداوند متعال و, و و و و که مستحضر هستین دکتر قندوهاری از چهره های شاخص در این زمینه هستن. من دهان نمی بندم و سخن کوتاه میکنم کنم چون میدونم مشتاقید از محضر جناب دکتر غندهاری استفاده بکنید پیشواز بیانات عرضشمند و استاد سلواتی محضر حضرت محصول تقدیم میکنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجامان عنام و مجموع استاد در خدمت تو هستیم عزیزان خیلی تأکید داشتن که سوالاتتون رو روی کاغذ بنویسین چون کلاس هست و میخواییم بیشتر استفاده بکنیم از محضر اساتید. مرهمت بفرمایید از این جمع بری میکنند. برآی و انشاءالله چون فرصت کوتاهه انتخاب میکنیم و, و به موضوع میپرد دازیم. در خدمت اصداد حسن السلام علیکم <سلام> محمد <سلام> بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سيما مولانا بغيت الله في الأراضين، بلعنت الله على أقدائهم أجمعين. اللهم اصلح عبدك و خلیفتک و ما بهی و و حفه به ملايكتك و وحفه بملائكتك به روح القدس من عندك و من بين يديه و من خلفه رسد يحفظونه من كل سوء وامن من بعد خوفه امنا يا عبده لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واول له في جهاد عدوك و وجعلني عدو من انصارك انك على كل شيء قدير <تصفيق> با تبریک ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیه و عرض کنم که بحثی که در روز جمعه روز منتصب به امام زمان علیه السلام و السلام در محضر شما خواهیم داشت من بحثم رو در مکاتب وحدت وجودی قبل از اسلام با یک مقدمه به مبسوط مبسود و هفتا عنوان از معرفی مکاتب وحدت وجودی و بعد یک جمع خدمت شما تقدیم خواهم کرد مقدمه اول عبارت هست از اینکه تعبیر عرفان اسلامی با عرفان اسلام متفاوته عرفان اسلامی ارفان رائج در فرهنگ و تمدن اسلامیه یعنی از قبیل ترکیب اخلاق اسلامی اعتقادات اسلامی نیست از قبیل ترکیب هنر اسلامی یعنی لزومن عرفان برخواسته از قرآن و منابع اصیل دینی نیست بلکه از هر کجا که آمده با هر اندیشه و مکتبی که آمیخته توسط هر قبیل از دانشمندان که آبیاری شده از اون جهت منتصب به اسلام و متصف به صفت اسلامی است که در سرزمین و قلمرو تمدن اسلامی روش کرده و شاخه و میوه داده لذاس نباید ارفان اسلامی رو ارفان اسلام تلقی کرد دکتر دوم، اون چه که در تاریخ مشهور با عنوان عرفان اسلامی است غیر از مکتب معرفتی قرآن و اهل بیت علیه السلام که معخوض از کتاب و سنت و تأثری از غیر و مکاتب دیگر در طول تاریخ نداره پس ما باید تفاوت بگذاریم بین آن چیزی که مشهور به عرفان اسلامی است و مکتب معرفتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام مقدمه سوم مهور عرفان اسلامی که موضوع سخن امروز ما هم هست وحدت جوهری عالم وجوده عبارت دقت کنید وحدت جوهری عالم وجوده که از اون در فرهنگ اسلامی تعبیر به وحدت وجود میکنند تعبیر به وحدت اطلاقی می کنند. تعبیر به وحدت سنخی در نوعی و وحدت شخصی در نوع دیگر می کنند. و در ادبیات غربی از او تعبیر به پنتیزم یا منیزم و یا ابسولیوتیزم می کنند. یکی از این سه تعبیر رو در آلم غرب به ویژه اول رو در آلم غرب بیشتر به کار ولی مهور مکتب معرفتی اسلام در این حوزه تباین خدا و خلقه نه وحدت جوهری آلم هستی تباین خدا و خلقه خلیبیت ادم سنخیت و غیریت صفتی خداوند عزوجل است. نه غیریت ازلی غیریت صفتی خداوند عزوجل است. لذا ملاحظه دقی در این تفاوت‌ها ضروری هر گونه تحقیق علمیه یعنی نباید این لفظ مشترک در بحث عرفان انسان رو دچار اشتباه در مطالعات علمی بکنه مقدمه چهارم عرفان اسلامی رو میتونه انسان به دو قسمت از نظر زمانی تقسیم بکنه یکی از نیمه اول قرن دوم هجری از آغاز تصوف بیاید شما تا ارز کنم که قرن هفتم یعنی عصر ظهور، محیدین عربی این دوران در بین محققین نظریه عام متصوفه و اهل طریقت وحدت شهود بوده در غیر غرب عالم اسلام و منطقه شام و مصر نظریه عام در بین همه پیران تریبت و سلاسل صوفیه چه در تصوف سکر و چه در تصوف صحب وحدت شهود بوده که گاهی همراه با حلول و اتحاد و فنا و وسال همراه می شده. که در اینجا اگر گاهی در دیدگاه دانشمندان از این وحدت تعبیر به وحدت وجود میکنن دقت علمی نداره. این وحدت نشان انتولوجیک نداره بلکه اون رو باید از در نگرش اپیستمولوجیک بهش نگاه کرد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. لذاست در قبل از ابن عربی در برخی شتهیات امثال ابو سعید اول امثال ارز کنم که حسین ابن منصور حلاج با یزید بستامی و دیگر بزرگان تصوف سو کرد اگر تعابیر وحدت گرایان نقل شده این وحدتها وحدت انتولوژیک و فلسفی و وحدت جوهری عالم نیست این وحدت ها باید از منظر وحدت شهودی و وحدت اپیستمولوژیک بهش نگاه بشه یه نوعی وحدت گرایی عملی در حالت اوج سکر اون صوفی و اون پیر طریقت و این متفاوت است با اون چرا که ما در اندیشه ابن عربی شاهد هستیم نوع دوم اینها حقش این بود اینا رو من به صورت پاورپوینت ارائه می‌کردم به دلیل علت گرفتاری هایی که تو این هفته عرض کنم به حمد الله نصیبم شد موفق به این کار نشدم لزاست که باید از کنم که اینها رو بعداً مکتوبش رو تقدیم شما بکنم چون بعضی از این تعابیر تعابیر دقیقیه که باید نگاه بکنید درش مطالعه بکنید تا بتونید از کنم که نتایج حاصل از اون رو پیدا بکنید دوم دوم گروه از ارفان اسلامی، ارفان وحدت وجودیه در برابر وحدت شهودی قربی ها میگن The Unity of Vision وحدت شهود The Unity of Being وحدت وجود این تفاوت گذاری بین این دو نظریه تفاوت دقیقیه که متاسفانه تو مملکت ما این دقت نه در حوزه نه در دانشگاه قبل از غربیها ها نبوده این دقتها دقتهای جالبیه و وحدت وجود اندیشه رایج توسط ابن عربیه و میتونیم بگیم که این ان پای گذار این اندیشه در عرفان اسلامی در غیر غرب عالم اسلام ابن مهی ابن عربی هست یکی از دلایلی که ما برای این کار میتونیم بیان بکنیم سندی است که جامی در آثار خودش دست داده در مناظره مکتوب علاود دوله سمنانی با کاشانی که در اونجا علاود دوله سمنانی یکی از بزرگترین اندیشمندان و پیران طریقت در سلسله کبرویه که میدونید سلسله کبرویه یکی از اون مسلاسله ارز کنم که طریقت های صوفیه در کل جهان اسلام خیلی مهم کبروییه نه در ایران در کل جهان اسلام مهمه یعنی در آسیای صغیر اونها حضور دارند در آسیای میانه حضور دارند در غرب عالم اس... در در جنوب شرق حضور دارند در جنوب غرب حضور دارند در شمال افریقا حضور دارن. جز اون مستلاسل کبرویه خیلی مهمه. و پیر طریقت کبرویه علا ادوله سمنانی بیابانکیه. آدم دانشمندیم هم هستند تا اثر علمی هم داره که آثار چاب شده. او به کاشانید تذکر میده این چی از تو نقل میکنن؟ این توابیر همه خدایی یعنی چی؟ تو پاد لب گور از خدا بترس بهش تذکر به مبدع و معاد میده از خدا بترس. پاد لب گوره. اینا چی تو میگی؟ اگر کسی بیاد تو رو با فضله خودت یکی بدونه تو از این احساس دشنام نمی کنی؟ بعد اون چرا که بر خودت نمیپسندی به خداوند عزوجل خداوند صبحان نسبت میدی، این سندی که جامی به دست داده خیلی مهمه این نشونگر اینه که حتی علاءالدوله دوله سمنانی پیره طریقت کبرویه در ایران نظریات وحدت وجودی و وحدت اطلاقی ابن عربی رو چی؟ بر نمیتابه و این نظریه در نزد اندیشمندان و بزرگان صوفیه تا اون زمان یک نظریه غریبی هست گرچه بعد از فوت علاءالدوله سمنانی و کاشانی اخلاف الاه و تمامشون چی شدن؟ تمامشون جذب مکتب وحدت وجودی ابن عربی شدند. خود وحدت وجود رو در جای خودش می توان به دو نظریه تقسیم کرد. یکی نظریه وحدت سنخی وجود وحدت سنخی. که وحدت وجود رائج بین فلاسفه مسلمان از شیخ شهاب الدین سهر بردی یه یبن حبش سهر بردی بیایی صدرای اسفهان نه ملا صدرای کهک ملا صدرای اسفهان این نظریه همه فلاسفه مسلمان رو و فلاسفه شیعه رو در هم می و همه اونها رو تابع این نظریه می این نظریه است که ازش تعبیر به تشکیک وجود می و سهروردی وجود رو امری مشکک تلقی می کنه امری زمراتب که اون رو به حکمای فارس نسبت میده و ریشه تاریخی اون رو اونها معرفی می دوم وحدت شخصی وجوده دوم وحدت شخصی وجوده که وحدت شخصی وجود بین فلاسفه رایج نیست مگر فلاسفه متأثر از محید دین مثل ملا صدرای کهک و الا این نظریه مربوط به ابن است و توسط او در جهان اسلام رواج پیدا کرده که خدمتون عرض کردم مقدمه پنجم وحدت وجود به طور کل و وحدت شخصی وجود به طور خاص به طور خاص در تمامی عرفانهای قبل از اسلام با عناوین دیگر خب تعبیر وحدت وجود یه عنوان عربی و رائج در ادبیات اسلامی با عنوانهای دیگر در تمامی ارفانه های هفتگانه ای که برای شما گفتگو خواهم کرد تا قبل از اسلام رواج تام داره که این موضوع بحث ماست ما در این بحث نکته ششم مقدمه ششم ما در این بحث این عناوین رو گفتگو خواهیم کرد یک وحدت وجود در مکتب اوپانیشات. دو وحدت وجود در مکتب ادویتا و دانتا سه وحدت وجود در مکتب داعو ایزم گاهی به جای دال ت تلفظ میکنن چون لفظ چینیه اون آلفابت رو ما تو فارسی نداریم تو عربی نداریم نمیتونیم تلفظ کنیم چه ته بگیم چه دال بگیم هر دوش درسته هر دوش دقیق نیست نزدیکه به لفظه لزاس بعضی از کتابات تاویزم می نویسن بعضی از کتابات چی؟ داویزم می نویسن چهار وحدت وجود در مکتب فیساگورسیان در مکتب فیساگورسیان پنج وحدت وجود در حکمت پهلوی و حکمای خسروانی قبل از اسلام شش وحدت وجود در حکمت رواق و هفت وحدت وجود در حکمت نو اسکندرانی من اینها رو به ترتیب تاریخ تنظیم کردم معمولا تو آثار و کتاب های دیگه اینها رو کدوم مقدم می معمولا به اسطلاح بحث فیسا رو مقدم می دارن. در حالی که اگر بخوایم اینها رو ما به ترتیب تاریخ وقوع در نظر بگیریم تقریبا تنظیمی هست که خدمتون عرض کردم آخرین مقدمهی که ارز کنم خروجی این مطالعه چهار نکته زیره نکته اول اولا مطالعه تطبیقی کامپراتیب استادی که یکی از روش های مطالعاتی به قول تعبیر عربی مطالعه مقارن در عرفان قبل اسلام که به خودی خود یک مطالعه ارزشمنده دو اصول مشترک عرفان قبل اسلام این مطالعه علی رغم تفاوت زمانی تفاوت اقلیمی تفاوت فرهنگی تفاوت نژادی این اصول مشترک رو به ما یادآور میشه سه تفاوت بنیادین مکتب معرفتی اسلام و اهل بیت با همه عرفانهای هفتگانه که گفتگو خواهیم کرد تا ای در این مطالعات مشخص خواهد شد گرچه خودش یک مطالعه مستقل میطلبه که در اناوین سخنانی های قبل یا بعد علل قاعده خواهد بود من وارد اون حوزه نمیشم چرا که همکاران دیگرمون در این موضوع سخن گفتند یا خواهند گفت و چهارم این متعالعه منابع, منابع احتمالی نظریه وحدت وجود در عرفان اسلامی رو در گزشته های دور تاریخی نشانگر خواهد بود. این هفت مقدمی بود که خدمتتون عرض کردم. اگه ریبان آبم به ما بدن، بعد نخواهد بود. کردم. ما. ما. اگر تا اینجای ای کلام عزیزان فرمایش دارد، خدمتشون است. وحدت شهود مبنای فلسفی نداره اون لفظ انتولوژیک و اپیستمولوژیک رو اگر بهش دقت کنید کل بحثونشون میده یعنی ریشه فلسفی نداره اونها به وحدت جوهری عالم وحدت شهودی ها اعتقاد ندارن. به آثار بزرگان متصوفه رو قبل از ابن عربی نگاه کنید. تمامی آثار بزرگ متصوفه قبل از ابن عربی معمولا یک باب توحید داره. معمولا. ببینید توحیدش رو بررسی کنید. ببینید توحیدشون با نظریات متکلمین ما با نظریات محدثین ما در بیان حقیقت توحید شاید تا هفتاد هشتاد درصد برابری میکنه اصلا وحدت جوهری عالم و عینیت خدا و خلق و سنخیت خدا و خلق اصلا بوی از اون استشمام نمیشه دقیق میکنید ولی اون عارف در حالی که ارز کنم از خود بی خود میشه به حال سکر ارفانی میفته غیر خدا را نمیبینه نه اینکه غیر خدا نیست اینو فرق میکنه ها. غیر خدا را چی؟ نمیبینه نه اینکه غیر خدا نیست لذا از این تعبیر میکنن به چی؟ به وحدت شهود این مطالبی که الان شما به خوبی بیان فرمودید اینا تمامش تو بحث چیه؟ تو بحث ارفان عملی پیدا میشه اون وحدتی که نتیجه عرفان عملی باشه وحدت شهوده وحدت وجود مال ارفان نظریه به بیرفان عملی نداره یعنی چی یعنی ماهیدین در حالت سهو ساده های حتی و و در حالت سهو دقیقاً مطالبی میگه که عرفای سکر رو پشت سر میگذاره دبجه این تفاوت وحدت وجود با وحدت شهوده یعنی ریشه فلسفی داره وحدت جوهری عالم مربوط به عرفان نظری است. نگاه کنید من چون بحثم بحث نقد نیست الان. میترسم اگر وارد بحث نقد بشم به, بحث به موضوع اصلی بحثم نرسم. اگر اجازه بفرمید شما بعد از پایان برنامه من خدمتون هستم بقیه این بحث و خدمتون چون داره وارد حوضه نقد میشیم بعد. زمان هم کم داریم بعد. بفرمید پس همین عدم سنخیار، انسان قطع خدا و ما امیر امیرالمومنین علیه السلام تو نهج ولاغ میفرمایند یعنی تو قسمت های دیدن ها یه فردی داره استرجام میکنه هم جمله ای که شما فرمودید. داره استرجام میکنه. ارشد معنی کردن استرجام رو شاید یکی از دلایلی که ایشون معنی کردن، تفسیر کردن این بود که به امثال این سؤال جواب بدن فرمودن که انا لله اعترافون على انفسنا بالملك انا علیه راجعون اعترافون على انفسنا بالحولک وقتی ما میگیم انا لله داریم میگیم هرچه داریم اینها نتیجه تملیک خدای عزبجل ما هیچی از خودمون نداریم یا ایو ایوهن ناس انتمول و الالله و الله و بلغنیی و الحمید وقتی شما میگید انا علیه راجعون دارید اعتراف به این میکنید که مرگ حتمیه کلشای حال کن الا وجهه معنیش اونه نه اینکه ما بریم در دریای اهدیت فانی بشیم همچون قطرهی در دریا این تعبیر تابیر تعب... عرفاست تابیر دین نیست خب آیه بود این عدم سنخیت رو چجور شما حسوس میکنید چون صدور چجور مثلا من همین عرض کردم دیگه نگاه کنید شما برای شبهی بر سنخیت آیه استریجار رو فرمودید منم اون رو جواب دادم دوجه فرمودید که آیه استرجاع به هیچ وجه به معنای سنخیت و فنای فلاح نیست تفسیر آیه رو بر کلام امیر المومن خدمت رو نرس کردم همه خدای عز وجل منشه خلقت کل ما سوالله اما نه به معنای ارز کنم که فلسفی صدور رو تو زبان انگلیسی از تعبیر تحبیر میکنن به ایمنیشن فیز صدور اینا تعابیر نو اینا تعابیر کتاب تاسوات ارز میکنم که فلوتین هست ربطی به دین این حرفا نداره اونی که ما در دین داریم خدا خلق میکنه ولی لیسه کمسلهی شایه خدا لمیلده و هیچ یک از مخلوقات هیچ نسبت وحدت جوهری و شباهت سنخی با خداوند عزوجل ندارن بلکه خلویت محض طرفینی بین خدا و خلق و بین خلق و خدا همیشه حاکمه خب اتفاقاً عزیزان بیشتر ذهنشون این هست که جایگاه این اندیشه حالا بررسی اپانیشادها که ما خیلی مشتاقیم بشیم زمان اونم بسیار کم هست و تاتوئیسم و فیثاغورثیاد و بقیه مکاتب دیگر اما در مکتب سقله این چه جایگاهی داره این اندیشه یعنی این سوالی که عزیز دلمون در ذهنشون ایجاد شده با تم دین و تم قرآن انا لله و انا الیه راجعون یا بعضی از تعابری که هم حضرت علی و و هزاران بار شنیدیم با یک سری آیات از قرآنی که متشابه بعضاً حتی هست تصور میکنن که بله همون قطره و دریاست چه جایگاهی در سقلین داره این اندیشه هستم در مکتب سقلین بیانه ها ایلاد خداست این بیان در حالی که خدا لمیلده اینها نظریه ایلاده خدا لمیلده یعنی اینها کاملا مقابل هم قرار داره اینها عینیت اینها سنخیت خدا مسانق با هیچ یک از مخلوقاتش ولا اشرف مخلوقات نور مقدس حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و نیست نور پیغمبر خدا نیست، مصانق با خدا نیست، مخلوط با خدا نیست، از جنس با خدا نیست و غیر خدای عزوجل و مخلوق خداست. لذاست که ما در مکتب سقلین به هیچ وجه به این نظریات اعتقاد نداریم و این برداشتر ایلاد میدونیم. اینها رو شرک میدونیم اینها با تصریح صدرین بله. هم همینی بوده بله. اینالله خلق المشی یه من نفسه بله. یا جابر اول ما خلق اللاینه همیشه خلق... خلق و ایجاد و خلق من العدم تعبیر داره نه بله. سرخیت خب من بحثم رو شروع بکنم انشاءالله اگر در پایان فرصت داشتیم من زوغم به جای گفتن این کفریاد همین حرف هسته ولی, ولی بزنین من حرف اصلیمو رو بزنم گزارش اینها رو بیان بکنم اگر فرصت داشتیم چون آقایونم به این جهت اینجا جمع شدن تو این زمان اگر فرصت داشتیم تو بقیه یه به اون قسمت ها خواهیم پرداخت یه سلواتی تقدیم بفرمید مکتب اول مکتب اوپانی شاده هاست اوپانیشتادها حالا من اینجا پاورپوین نگه بودم تخت سفید جدید من بنویسم بعضی از این رو بعد این بالا بزرن که من بتونم بنویسم حالا عزیزشون نکنیم بله ارز کنم که مکتب اوپانیشتادها در واقع مکتب تفسیر ارفانی کتاب وداها هست ویDA -E, در آثار هندویی چهار تا کتاب مقدس داریم هر کدوم هم یه پیش یه پیشوند داره اعرض کنم که که به جمع چهار کتاب ها میگن وداز این کلمه سانسکریت ها این کلمه عربی نیست عین تش نداره ودا مثلا مهمترین این چهار ودا و ریگ ودا هست ار ای .E جی بعدم ودا رو اضافه کنید مهمترین اینها کتاب ریگ ودا است کتاب بر... بر کتاب وداها که هندوها اینها رو آسمانی میدونن ولی ما یقین داریم اینها تراوش ذهن بشر و از تولیدات شیطانه برای اینها که از آثار اساتیری به فارسی هم ترجمه شده میتونید پیدا کنید توی کتاب روشی ها دارن برای اینها این آثار اساتیری جنگ خدایان دعوای خدایان حسادت خدایان دزدی خدایان برای اینها اومدن عرفای هندو به قول خودشون میگن سیرز فرزانگان هندو اینها شرح عرفانی نوشتن شروع عرفانی وداها بیش از 150 شرح میدونید من دکتریم رو در هند گرفتم من ده سال ساکن هند بودم و موضوع رساله دکتری من مقایسه وحدت وجود در اندیشه ابن عربی با وحدت وجود در اندیشه هندوی بود اگر میبینید گاهی از این اصطلاحات نامنوس به کار میبرم منو ببخشید ولی اینا لازمه این مطالعه علمیه هر <تصفح> کنم که از بین این <تصفح> لطف فهمید میبره از بین این کتاب های اپانیشاد همشون به اهمیت و اعتبار یکدیگر نیستند. دارا شکوخ شاهزاده بزرگ تیموری که آدم دانشمندی هم بود ایشون آمد. خوب من با هم پاشم بایستم بلنگوری چیکار کنیم ها؟ مشکل نداریم؟ کنید. ارا <ساعده> بزرگ تیموری ایشون پنجه نفر از پاندیتهای هندو رو جمع کرد و اینها اومدن زیر نظر او و با بودجه او کتابهایی از اپانیشادها رو انتخاب کردند، ترجمه کردند به زبان فارسی که زبان, اون زم... که زبان دربار تیموری بود تحت عنوان سر اکبر چاپ کردند این کتاب توسط انتشارات تحوری چاپ شده موجود سر اکبر ترجمه پنجات اپانیشات بر کتاب اوپانیشاد غربی ها بیشتر از ما ایرانی ها مطالعه کردند. دانشمند بزرگ هندشناس انگلیسی به اسم رابرت هیوم این رو با دیوید هیوم اشتباه نگیرید. رابرت هیوم یه کتابی داره توسط آقای شفق به فارسی ترجمه شده تحت عنوان گزیده اپانیشتاد ها آوردم اینجا. گزیده اپانیشتاد ای ها که ایشون یازده تا اپانیشتاد رو انتخاب کرده. ما ننده منتخبات مختلفی از اپانیشتاد رو گرفتن و چاب کردند. پس اوپانیشادها در واقع شرح عرفانی کتاب ودا و آین بت پرستی و چندگان پرستی پلیتیئیسم در هندویزم رو اوپانیشادها به یک وحدت عرفانی تبدیل کرده لذاس که به نوعی توحید عرفانی شده یعنی چه یعنی اتفاقی افتاده پلیتئیزم و چندگان پرستی وداها در اوپانیشادها تبدیل به توحید اطلاقی نه توحید دینی اشتباه نگیرید تبدیل به مونیزم شده نه مونوتئیسم تبدیل به مونیزم شده. مونیزم یعنی وحدت ارفانی نی. میشه توحید دینی. بنابراین مبنای کتاب اپانیشادها اندیشه مونیزم و وحدت ارفا است توجه فرمودی. در بین اپانیشادها محور اندیشه citra... محور اندیشه یک ثانیه و آتمنه یک آقا یه ماجیک دیگه به من بده یک ثانیه و آتمن هست برحمن یعنی خدا آدم یعنی نفس کلی آدمی، نفس فردی نه، نفس فردی میشه جیوا، نفس کلی آدمی ما تو اسلام نفس کلی نداریم تو هندویزم هست یکسایی و یکسانی برهمن و آدمان یه جمله رو شما اگر در هند، در بین فرهیختگان و دانشمندان بگیر زوغ میکنند، کیف میکنند. اونم تا توام اسی. یعنی تو من هستی. تو من هست. یعنی تو یعنی آتمن. من یعنی برهمن. تو من هستی. این مهور اندیشه های چیه؟ اندیشه های اپانیشاد هاست. پس وحدت آتمن و برهمن، مبنای کارموناست توجه فرمایید یک کتاب دیگری در مکتب اوپانیشادها مکس مطرح به اسم کتاب گیتا G I T A گیتا که گاهی احترام میذارن میگن باگوات گیتا یعنی گیتای بزرگ کتاب گیتا یه گفتگوی هست، است که یه قسمتی از رزمنامه بزرگ محابهارات هست. محابهارات به فارسی ترجمه شده هست. کتاب حماسی مهم مهنده، این اون کسانی که رو هندشناسی شناسی اندولوژی کار بکنن، اهمیت کتاب مهبهرات رو می دونن. گیتا یه بخشی از کتاب از این رزمنامه بزرگه که نمایش نامه گفتگوی کریشنا و آریژاست را... که گفتگو و محاوره کریشنا و آارجونا است این کتاب هم در هند خیلی اهمیت داره چطور شما توی مثلا ایران یه قسمتی از دعای کمیل رو بخونید میبینید مردم دارن زیلده با شما نجوان میکنند همراهی میکنند حفظن خیلی از مردم عبارات دعا رو مؤمنین منظورم هست توجه فرمودید در اونجا هم شما عباراتی از کتاب گیتار رو وقتی بخونید لازم نیست بقیهشو بخونید مردم چی؟ مردم با شما میخونن انقدر در نفوس مردم این کتاب موثره توجه فرمود پس به این ترتیب کتاب مکتب اوپانیشاد مبتنی بر وحدت اطلاقی وجوده مبتنی بر وحدت وجوده از نظر تاریخی مربوط به دوره قبل از ظهور بوداست ظهور بودا مال قرن شش قبل از میلاده قبل از ظهور بودا بعضی میگن قرن شش ولی قبل از بودا ولی تا قرن هشتم میان البته شش تا هشته قبل از میلاده دزاز از نظر تاریخی من معرفی و پانیشاده ها رو مقدم قرار دادم توجه فرمودید؟ پس به این ترتیب این مکتب مکتبیس وحدت وجودی به ویژه در کتاب چندوکیا اوپانیشات، در کتاب چاندوکیا اپانیشات در کتاب کنا اوپانیشات، در کتاب خاتها اوپانیشات، در کتاب پرشنآ اپانیشات در کتاب منداکا اوپانیشات. در کتاب ماندوکیا کیا اپانیشاد در همه اینها تعابیر وحدت وجودی و بالاخره در کتاب چی؟ در کتاب گیتا این تعابیر کاملاً چی؟ کاملاً وجود داره لذا شما با استفاده از این تعابیر میتونید چی؟ میتونید نظریه وحدت وجود رو در آثار اپنیشادها چی؟ اپنیشادها ببینید عنوان مثال من براتون بخوام ارز کنم عنوان مثال نگاه کنید این کتاب باگوات گیت هست که به فارسی هم ترجمه شده البته باگواتشو لازم نیست بگید همون گیت ها بگید کافیه من علامت زدم یه قسمتیش رو براتون بخونم ارز کنم که در این کتاب کریشنا خطاب به در ادهیای های این کتابه چون فصول متعددی داره در اینجا میگه آرجونا روشنی آفتاب آلمتاب منم فروغ ماه منم آتش را نور من بدان من به ملک زمین در آمده به قوت خود نگاهبانی جانداران می نمایم قرص ماه که آبیست جمله قله ها و سبزی منم من آن آتشم که در میده جانداران همراه و در بادی که از بالا و پایین به در می رود خردنی های اینها را به تحلیل میبرم در سینه جمیع این دارارم. قوت حافظه و مدرکه بیده ها منظور فرزانگان و پیدا کننده علم و داننده آن منم یعنی در اینجا شما تو این کتاب شما متعدد میتونید به اصطلاح اندیشه های ناشی از وحدت جوهری وجود رو که ازش تعبیر میکنند به چی؟ به مکتب منیزم در آثار اوپانیشادیک میتونید پیدا بکنید. از نظر تاریخی دستگاه ادویتا ودانتا از نظر تاریخی مکتب شماره دو نیست ولی چون مربوط به این قسمته من اون رو هم با اینکه باید مثلا در مکتب چهارم بخونم ولی همینجا میخونم مقد... ودانتا تعبیر ودانتا و, و... و یعنی چی؟ یعنی غیر دویت اصلا خود کلمه عدویتا ودانتا یعنی مکتبی که با دعیت با سنویت مخالفت میکنه مکتبی که با کسرات مخالفت میکنه قائل به کسرتی در این عالم نیست همه عالم رو از دید وحدت مینگره همه اونها رو یک چیز میبینه توجه فرمود بر مکتب ادویتا تفسیرهای متعددی نوشتند. رامانوژان یکی از مفسرین و فلاسفه بزرگ مکتب ادویتا است. مادهوا یکی دیگر از مفسرین و فلاسفه بزرگ این مکتب ولی از همه اینها بالاتر عرض کنم شانکارا چاریاست چاریاشو ول کنید شانکارا شانکارا حکیم بزرگ هندویی تو سانسکریت میان بالای اس یه نقطه میذارن شین میخونن اینو سانکارا نخونید شانکارا بخونید شانکارا حکیمیست در قرن هشتم میلادی یعنی چی یعنی بخوایم این رو هجریش بکنیم میشه قرن دوم هجری خب قرن دوم هجری دقیقاً مصادف با آغاز ورود تصوف در عالم اسلامه هنوز تصوف نه حلاج داره نه با یزید داره نه بیان جلوتر غزالی و ابن عربی هیچ نداره ایشون شانکارا پایه بزرگترین عارف هندویست، پایه مکتب ادเวیتا ودانتاست. میخوایم من براتون فارسی بینیمیم یا انگلیسی بینیمیم؟ کدوم راحت تری؟ راحتترن خیلی. پایه گذار مکتب ادเวیتا ودانتاست که یعنی و تفسیر غیر دوئی تفسیر غیر سنوی از اندیشه های مکتب اوپانیشادها پس اوپانیشادها عرفان وداییست مکتب ادویتا ودانتا یه رتبه بالاتره شانکارا در عالم عرفان مهمتر از ابن عربیه یعنی اگر تو دنیا بخواهی شما عرفای بزرگ و نام ببرید. نمیدونم ابن عربی تو ده نفر اول اسمش میاد یا نمیاد. ولی اسم شانکارا قطعا میاد. توجه میکنید؟ اسم شانکارا قطعا میاد. او چند قرن مقدمه بر ابن عربیه؟ حدود پنج قرن مقدمه بر ابن عربیه. اما نظریاتی داره من سره که راز فوق وقتی استاد ما به ما تفسیر شانکارا درس میداد انگار داشت اشعار شیخ محمود شبستری رو میخوند یعنی اینقدر شبیه بود من همینطوری که ایشون درس میداد و نوت بر می داشتم هر جا شباهتی بود بین حرفای شانکارا و ارفان ابن عربی زبدر میزدم پایان ترم زبدرها رو شمردم دیدم پنجا تا زبدر زدم <تصفيق> گفتم خب رساله دکتریم درآمد <تصفيق> توجه میکنی؟ به خودم گفتم رساله دکتریم درآمد که مطالعه مقایسه این دوتا با هم در مشترکات و تفاوت ها و همین رو هم بردم به زارت تصویب کرد به همین رو به عنوان رساله دکتری نوشتم توجه و فرمودید به صورت پس شانکارا کسی است که اگر ما بخوایم به لفظ اسلامی صحبت بکنیم به چی معتقده به وحدت شخصی وجود معتقده به وحدت شخصی وجود معتقد. او معتقده که برحمن رو یعنی خدا برحمن رو از دو منظر میشه نگاه کرد از به دو اعتبار میشه نگریست یکی عرض کنم که برحمن نیرگونا برحمن اینو من ناچارم که به انگلیسی بنویسه اینو رو سانسکریت انگلیسی نیست دوم ساگونا گونا برحمن نیرگونا و ساگونا گونا می گونا میدونید زبان سانسکریت و زبان پهلوی هر دو زبان سامی هستند خیلی به هم نزدیک هم. مشترکات زیاد دارند گونا همون گونای خودمونه میگیم چند گوناه دو گونه سه گونه همونه نیر گونا نیر چکار میکنه؟ منفی میکنه یعنی یعنی خدای غیر متصف نیر گونا به یعنی خدایی که گونه ندارد خصوصیت ندارد اسم و صفت ندارد ویژگی ندارد خدای غیر متصف اگر بخوایم تطبیق بکنیم بیاین پنج قرن بعد میشه چی میشه مقام احدیت محی الدین دقت پنج قرن بعد از اون محی الدین میگه در حالی که نه محیدین به هند آمده نه زبان سانسکریت بلد بوده نه این آثار به عربی ترجمه شده بوده دقت میکنید اینجا نشانگر فعالیت شیطان در دو منطقه است بیانی غیر از این نداره توجه فرمودید فعالیت شیطان در مسیر شرک تو دو, دو منطقه است شیطان خیلی جا تخ میذاره امیر المومنین تو نعجل بلاغه می که بعضی ها هستن که شیطان تو صدر و سینه تخ میذاره جوجه میذاره <تصفح> به هم صورت همه ی مکاتب شیطانی همینطورن هم. همه ی مکاتب غیر الهی همشون همینطورن هم. من چون شما رو اهل میبینم خیلی اوریان صحبت میکنم و ولی تو دانشگاه اینطوری اوریان صحبت نمیکنم <تصفح> عرض کنم که ساگونا به من یعنی برحمن متسف که اگر ما بخوایم این رو بر نظریات ابن عربی تطبیق بکنیم یعنی چی یعنی مقام واحدیت مقام جلا و استجلا مقام جلا و استجلا یعنی فیض اقدس و مقدس یعنی خدای متجلی این تعابیر همین با هم برابره ها با فرقی نمی عرفان سهر ادبیات. از این الفاظ اونقدر میگن که شما گیج میشی فهم حرف حساب زدن. سهر ادبیات. به هر صورت بنابراین محیدین اینها رو مقام جلاب و استجلام میدونه. خدای متجلی میدونه. گاهی تجلی، تجلی در اون ذاتیه که ایان ثابت و صفات حق ظاهر میشن گاهی تجلی تجلی بیرونیه که خود خداوند متصف به همه ماهیات و اعیان وجودی میشه خب ایشون میگه که علت اینکه افراد گرفتار ساگونا به میشن علت مسئله عدم معرفت و بسیرت او ازش تعبیر میکنه به سیوپر ایمپوزیشن سوپر ایمپوزیشن رو ما بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه غیریت تلبیسی نتیجه التباسه توجه کردید؟ نتیجه عدم بصیرته نتیجه نفهمیدنه خودشان کارام مثالی میزنه میگه دم آدم غروب شما داری به خانواده میری تو جاده حرکت میکنی یهو پسر دختر کوشی میگه بابا مار مار مار فرار میکنه جیغ میزنه میگه دخترم کومار مار اینجا نیست چراغ میاری نزدیک بابا این ریسمان مار نیست تو تاریکی دم آدم شب اون کسی که بصیرت نداره ریسمانو چی میبینه؟ ریسمانو مار میبینه. در حالی که چی؟ در حالی که ریسمانه. مار نیست. ایشون میگه جهان چیزی جز برحمن نیست. کل عالم هستی خداست. یعنی این گونه نیست که خدا خالق هستی و غیر هستی باشه. این پرده ذات خداست. این دیوار ذات خداست. این تریبون ذات خداست. من شما ذات خداییم. نمیدونم بگین شما این مکتا ذات خداست. این کتاب همین اصلا غیر خدا تو آلم وجود نداره. توجه گردید؟ غیر خدا تو آلم وجود نداره. چ... کسرات رو چرا افراد گول میخورن و غیر خدا میبینن؟ این اسماع مختلف اونها رو گول میزنه. عدم معرفت ناشی از این مسئله است. لذاست, لذاست که الیتی وجود نداره از نظر عرفان شانکارا. در الیت علت واقعیه. اما معلولی بود. معلول غیر واقعی است معلول رو عدم بسیرته. ما معلول نداریم. کل عالم هستی ذات خداست. خلقتی نداریم. به خلقت عرفان لفظ صدور رو به کار میبره. لفظ تجلی و ظهور رو به بکار میبره توجه داشته باشید تجلی یه لفظ قرآنیه فلما تجلا ربهو للجبل جبل جعله جعله دکن و خر موسا ساقه توجه فرمودید پس تجلی قرآن داره ولی تجلی قرآن فعل خداست تجلی در عرفان شانکارا و دیگر عرفا تجلی رشیحی دقت کنید تجلی رشیه که اون ذات جریان پیدا میکنه و در اعیان مختلف متعین میشه ذات حق به ظهورات مختلف ظاهر میشه به اعیان مختلف متعین میشه همه ی عالم هستی تطور ذات خداست این حرف کیه؟ این حرف ارز کنم که این مکتبه. سومین وحدت این وحدت وجود در آین تاعیزم هست. آین تاعیزم یا آین چینیه. در واقع بعد باطنی آین کنفسیوسه. کنفسیوس بود ظاهری و اجتماعی و تعالیم اخلاقی مکاتب فلسفی چینه در حالی که آین تاو تا بود باطنی و معنوی آین های چینیست سه تا شخصیت در این آین مطرح هم. یکی یانگ چو دوم لاوت هزو لاوت هزو که لاوتسه هم اسمشو تلفظ میکنن و سوم چوانگ تزو این هر سه حدود قرن چهار قبل از میلادند حدود قرن چهار قبل از میلادند کتاب اصلی این آ تاوت تا چینگ تا چینگ که بیش از 600 تا دانشمندان چینی و ژاپنی تا به حال بر این کتاب چی بر این کتاب نوشتند آقای توشیکو توشیکو ایزوتسو رو بعد شما علالقایده بشناسید ایزوتسو مستشرق بزرگ ایران شناس ژاپنی بود که 7 سال پیش فوت کرد سالیان درازی تو انجمن حکمت و فلسفه تو تهران درس میداد. فارسی به راحتی تکلم می کرد خیلی به ایران و فرهنگ ایرانی عشق می ورزید ایشون یه کتابی داره به انگلیسی که دیدم به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان سوفیزم ان تاویزم یعنی یه مقایسه یه متعالعه مقایسهی کرده بین چی؟ بین تصوف خاصتا در مکتب ابن عربی با کی؟ با عرض کنم که با اندیشه های که در اون کتاب ایشون نظریه وحدت, جو وحدت وجود مهور مطالعات است. که آمده وحدت وجود ابن عربی و صوفیان مسلمان رو با وحدت وجود تاؤیی چکار کرده؟ مقایسه کرده. کتاب دیگری هست که رنگنون نوشته رنگنون مستشق بزرگ فرانسویه خیلی مهمه یک کتابی داره به فارسی ترجمه شده تحت عنوان نگریشی به مشرب باطنی اسلام و آین دعو که همون تائو هست و آین دعو باز همیشون آمده یک همچین مقایسهای در این کار انجام داده ولی کتاب اول کتاب عالمانهتر و قویتریه اگر میخواید شما یه اندیشه یه گزارش کاملتری از وحدت وجود در آینه تئوئیزم داشته باشید به ترجمه کتاب ایزوتسو مراجعه کنید کلمه ی تاو اصل حرف مکتب تاویزم لفظ تاو هستی ای او کلمه ی تاو یعنی یعنی راه یعنی جاده اصلا لفظ تو زبان چینی یعنی راه و جاده منظور از تاو اینه که انسان خودش رو به طبیعت بسپره تسلیم تقدیر عالم باشه تسلیم آنچه بر او میگذرد باشه در برابر عالم هستی از خودش هیچ مقاومتی نشون نده نه مقاومت مادی نه مقاومت معنوی و این ریشه اون وحدت عرفانی است که تائیزم به اون دعوت میکنه چهارمین مکتب مکتب فیثاغورسی هست فیساقورس ریاضیدان شیمیدان عارف و دانشمند بزرگ قرن ششم قبل از میلاد همه ارفانه های دنیا رو به فیسابورس نسبت میدن یعنی گاهی به جایی که بگن مکتب ارفانی میگن چی؟ میگن میراس فیسابورسی دقت کنید گاهی به جایی که بگن مکتب ارفانی چه لفظی رو به کار میبرن؟ میگن میراث فیساغورسی یا میراث نو فیساغورسی <تصفيق> به طوری که کلمه عرفان رو در حقیقت پای گذار رو به غلط او معرفی میکنند. در حالی که شما دیدین مکتب اوپانیشادها مقدم بر فیساغورس و ارфан های ولی مشهور اینه. آره دکتر میاد این ارتباط این دو هم همون توخ گزاری شیطان هست یا نه ارتباطی با هم داشتن در فیس قورس بخیه عسقای میکنن میرسم مرز میکنم شش فیسا قورس خودش در حالی که مکتب عرفان عملی و گذاری کرد یعنی خود فیلسا در عرفان نظری مطلب و, و, و حرف و مکتبی نداره. بیشتر مطالب او تو عرفان چیه؟ تو عرفان است. اما در شاگردان او، در شاگردان فیلسا غورست است به نام پارمنیدوس، کلمه زمه و سین رو که آخر الفاظ میارن مال لحجه یونانیه. اگر همین رو بخوایید شما به زبان لاتین ادا کنید بندازید پارمنید. توجه که پارمنیدم میتونید بگید. هراکلیتوس به لاتین میگین چی؟ هراکلیت. دموکریتوس به لاتین میگین چی؟ میگین دموکریت. تو زبان فارسی هم بعضی از لهجه ها گاهی آخر لفظ خودشون سین میارن اینا مربوط به لحجه های محلیه به هر صورت هارمنیدوس حکیم بزرگی است که آقای دکتر اعوانی دانشمند بزرگ ارفانشناس ایرانی معاصر ایشون یه مقاله ارزشمندی داره. من تو توصیه میکنم. این مقاله رو در کیهان فرهنگی پیدا کنید و بخونید. تحت عنوان وحدت وجود از پارمنیدوس تا ابن عربی. یعنی آقای دکتر اعوانی گذار وحدت وجود کی معرفی میکنه؟ آه، پارمنیدوس معرفی میکنه. البته این تعبیر حالا من رو احترامی که برای آی قائلم تعبیر دقیقی نیست. دیدید، به اصطلاح مکتب افانیشات ها مقدمه بر اونه. ولی به هر صورت این است که در دانشگاه ها اساتید به کار می برند. پارمینیدوس، یک دانشمند فیساغورسی در، مکتب ایلعایی هست، ایلعا او وجود رو امری ابدی و ازلی میدانه هستی رو جهان مستمر میدونه ایشون شاگرد گزنوفن هست اسم گزنوفن رو ایجا ثبت کنید به دردتون نخوره گزنوفن موحد بوده با پرستی مخالف بوده با صورتپرستی مخالف بوده و پارمنیدوس شاگرد گزنوفان هست پارمنیدوس به وجود علل اطلاق معتقده کل عالم هستی رو وجود ثابت میدونه که این وجود هرگز با لا وجود آمیختگی نداره. این وجود سیرورت نداره. این وجود کسرت نداره. این وجود حرکت نداره. این وجود اجزا نداره. وجود در عالم هستی از نظر پارمنیدوس ناآفریده است. مخلوق نیست. از میان رفتنی نیست. ازلی و ابدیه. وحدت تام داره وجود کامل و هیچ نقصی نداره جهانشناسی شناسی پارمنیدوس یعنی در واقع با اصول هراکلیتوس که معاصر با اوست با اصول هراکلیتوس در سیرورت اشیاء مقابله میکنه در اتصال و, و انفصال متوا... متناوه به اشیا مقابله میکنه. با تقابل و انقسام و استحاله موجودات مقابله میکنه. پارمنیدوس قائل به اطلاقه، قائل به صباته، قائل به چی؟ قائل به بساطته. لزاس او رو چی؟ او رو پای گذاره، وحدت وجود و وحدت اطلاقی در عالم چی؟ در عالم فلسفه معرفی میکنند. من یکی می سرعت گرفتم چون دارم به ساعت نگاه میکنم. بله. میخوام بس رو تمامش کنم. پنجمین مکتب وحدت وجودی وحدت وجود، در حکمای خسروانی آیا ما اساساً حکمای خسروانی که حاجماللاهادی از اونها تعبیر به چی میکنه؟ تعبیر به فهلویون میکنه یعنی حکمای پهلوی تو زبان عربی چون ته نداریم، این را تبدیر به فه کرده حکمای پهلوی عرض کنم که نام دیگر حکمای پهلوی رو او خسروانیون به کار میبره در کتاب حکمت الاشراق سهر بردی حالا اینکه آیا اساسا ما در ایران قبل از اسلام حکمای وحدت وجودی به اسم حکمای پهلوی یا خسروانی داشتیم این یه بحث تاریخیه اجمالاً بدونید که دانشمندان و مورخین و فیلسوفان قبل از سهروردی خب قبل از سهروردی ما این همه فیلسوف داریم اینا هیچ کدومشون هیچ کدام از اینها فارابی از خسروانیان صحبت نکرده. ابن سینا و شاگردانش هیچ کدامشون از حکمای خسروانی صحبت نکردن. دانشمندان بعدی اصلا صحبت نکردند تنها منبع حکمت خسروانی که حکمتی وحدت وجودی و قائل به تشکیک در وجود است. قبل از سهروردی کسی این گزارش رو از سهروردی آرفم شما سند نخواید. سند تاریخی نخواید. عرفا من مبناشون در سندیت حدسنی قلبی ربی هست. اونها ارز کنم که سند نمیدن. لذاس اینها دریافت های اوست اینها مکاشفات اوست نکته دقت کنید اینها مطالعات تاریخی اوچیه نیست بعضی از دانشمندان ماسرین مثل آقای تغی اینها گفتن نکنه سهروردی تو این حرفا تحت تاثیر آثار شعوبیه بوده من گمان نمی کنم مثلا اینها مگه اینکه توجه ندارن اندازه به کی دارن صحبت میکنن راجع به سهروردی دارن صحبت میکنن م... حالا براتون اینو بگم وقتمونم کم ولی اشکال نداره محی دین یه کتابی داره من منزل دارم. در اون کتاب یه مناظره داره با افلاطون افراتون رو کوبیده یه مناظره داره با اب ارسطو ارسطو رو کوبیده مناظره داره با حلاج حلاج و زمین زده با, این با حدود ده 15 نفر مناظره کرده بر همشون تفوق ویدا کرده. خب فاصله بین ابن عرب با اینا هر کدوم هفت هف قرن، پنج قرن، سه قرن چطوره با اینا مناظره کرده؟ این مناظره تو عالم کشفه. دقت میکنید؟ این مناظره تو عالم کشفه. از آرف شما سند نخواید. توجه فرمودید. به صورت لزاس بحث تاریخی حکمت خستروانی یک مطالعه مجزاس بماند حرف بر گفتن زیاد داره و تو این جهت نظریات مختلفی هست آقای متحری نظری داره آقای تقیزاده نظر دیگری داره دکتر اوانی نظر سو می داره دکتر ارز کنم که داوری نظر چارو می داره اینا بماند اونا بحثه موضوع بحث ما نیست. سهر بردی معتقده حکمت عتیق خمیره است و, و زمین از حاملان حکمت الهی که او اینها رو خمیره ازلی می نامه حکمت الهی رو او خمیره ازلی می نامه جهان رو از اون خالی نمی دانه این حرفی که ملا صدرا تو آثار خودش این رو مبنای استدلال بر لزوم وجود حجت قرار داده دوجه کردیم این مطلب سهر بدی رو گرفته یعنی همونه که ازش تعبیر میکنن به ممکن اشرف ریشش اینه به هر صورت خمیره ازلی ایشون میگه حامل خمیره ازلی در همیشه در عالم بوده حامل خمیره ازلی او قیم کتابه خوب دقت کنید قیم کتابه ایشون معتقده این خمیره غزلی یا نور قامس با تازا و سین یا نور تامس هم در شرق جاری بوده هم در غرب حامل این خمیره ازلی در غرب فیساگورسیانند افلاتونیانند که از طریق زنون به عبوسهل شوشتری رسیده در شرق درم اینجا به بحثم میرسم در شرق حامل این خمیره ازلی یعنی حکمت و نور سهروردی خسروانیین و فهدویونند که از طریق با یزید وستامی به حسین ابن منصور حلاج به ابول حسن خرقانی و به درجات بعدی میرسه و افتخار خودش رو در این میدانه که من یعنی سهروردی دریافت کننده خمیره ازلی هم از غرب و هم از شرقم هم. هم از غرب و هم از شرقم لذاس او خودشو قیم کتاب در قرن ششم میدونه لا اله الا الله خودشو سهروردی خودشو قیم کتاب در قرن ششم میدونه ایشون در کتاب حکمت من این رو آوردم نمیرسم بخونم به خودی بار کشتم تا اینجا فهمنه که تا 9.45 دیگه بحث رو جنبندهی بکنیم چه؟ هم دیر شروع کردیم و بتونیم بیشترم به هدف به نزدیک بشیم سوار وردی میگه من در حکمت الاشراق اموری رو ثبت کردم که اجمال اون رو حکمای سابق در یافته بودن و تفسیلش رو خدا نصیب من کرده او هرمس رو والدول حکمان می دونه. به زرتشت و افلاتون انایت فراوان داره و اونها رو چهره های حکمت جاوید و خمیره ازلی میدانه. توجه کرد. او معتقده ایرانیان باستان بعد از گشتاس به انحراف سنوییت افتادن. و بحثا تاریخی نیست و بحثا کشفیه بحثا قبل از او همه در توحید بودند ایشون در متارحات کتاب متارهات حکمت اشراق خودش رو مدیون این جمله مهمه مدیون حکمت و مشرقیین ابن سینا میدانه ابن سینای تا قبل از همدان ابن سینای بخارا تا همدان ابن سینای ارسطویی است ولی ابن سینای اصفهان ابن سینای مؤلف حکمت المشرقیینه و این جمله خیلی جمله مهمیه لذاس بر اساس این منظر هست که حجم مولا در شعر مشهورش میگه الفهلیون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن طعم بن غنا و, و فقرن تختلف کنور حیفه ما تقوا و ضعف این مطلبی که او بیان میکنه برگرفته از اندیشه های سهر بردیه. ملا صدرای اصفهان به همین به نظریه تشکیک در وجود یعنی چی یعنی در در عین اینکه وحدت سنخی جوهری از ذات حق تا اخص اخص تا اخص موجودات جاری و ساری است در این حال در عین حال تفاوت مراتب از نظر قوت و ضعف در عالم وجود داره به این میگن نظریه شی تشکیک و وجود رو امری مشکک میدونن اگر میخواین من تو ده دقیقه دیگه بس رو جمع میکنم اگر, که اگر دیگر بشه دیگر به یه هدف برسیم عالیه تو ده دقیقه دیگه اگر بشه اگر بشه پنج دقیقهش بکنیم خیلی بهتر چون آرا... سآلاتی هم پرستیدن چنانم دیدار که بسیار خوب. آره ببینیم بش, بش, بش بپرسیم نظری مکتب ششون وحدت وجود رواقیه مهور حکمت رواق زنون هست. زنون و جانشین او خروسپس که اینها مال قرن سوم قبل از میلادند. قرن دوم و سوم قبل از میلادند. مکتب رواق بیشترین تأثیر گذاریش در مکتب سهر بردیه. او خدا رو نه فقط آفریدگار جهان میدونه، علت فاعلی جهان میدونه، علت مادی جهانم میدونه. او دقت کنید؟ به وعدت وجود داریم صحبت میکنیم. ما. پس خدا رو هم علت فائلی و هم واقعیت جوهری عالم هستی میدونه. لزاس معتقد خدا و طبیعت، دو نام هستند برای یک واقعیت فلسفی رواق در عین اینکه فلسفیز وحدت وجودی عقل‌گرا و اخلاقی هم هست ولی وحدت وجود اونها وحدت وجود جسمانیه. نه وحدت وجود روحانی انسان عالم صغیر و جهان عالم کبیره و هر فردی از موجودات بهره از دم الهی است بهتر دقت کردی؟ هر فرد همه موجودات و پاره از عالم کبیر هستند و سرانجام وحدت وجود در نظریات نو نوعفلاتونی. نوافلاتونیان محورشون فیلون حکیم یهودی هست که در چهل قبل از میلاد زاده شده و در چهل میلادی از دنیا رفته و شاره تعویلی کتاب تورات و یک دوره فلسفه عرفانی نو رو در زیل کتاب تورات نگاشته مؤسس نظریه اقانیم ثلاثه اهد عقل نفس فیلون هست. اقانیم سلاسه عنوان فلسفی تسلیس دینی مسیحیت. لذاس قرآن اشاره میکنه میفرماید یوهه قول الذین کفر من قبل مفسرین قول الذین کفرون من قبل رو به احتمال قوی اشاره به نو و اسکندریان می دانند. او میگه اهد وجود ورای هستیه دون مرتبه اهدیت از همه در واقع همون بسیط الاشیا کل الاشیا و لیسه بشه این منهای ملا صدرا مقام اهدیتی که مقام اهدیت نو افلوتونی است دقیقا دکتر همون کلامات شانکارا شد بله همین نه همون اندیشه ها های شانکارا همون اندیشه های همون مناطق مختلفی بقا. که شیطان کار کرده بود جناب دکتر ازخایی میکنم زمان ما واقعا خیلی زیغه من و عزیزان سوال دارن و دارن اشاره میکنن که وقت رفت سوالات ما مند آخر تکلیف ما روشن کد و مندم این وسط چه کار تکلیف شما به استاد دا... ما نقل میکردن از مردم های طلال ازمای میلانی الله طلال که شما میفردن <تصفح> هر وقت کسی به هایی که هم جمع میخوردن به ساعت نگاه میکردن میگفتن بس است به اصلاح واجبه چیه؟ وا... ها واجب اینی نیست بسه است واجبه یه نفرم بگی از بقیه ثابت میشه کفاییه لطفاً از این فرمایش شما خدا حفظتون ان شاءالله آقای سید سوالاتی در ما خدمت شما هستم اگر مهربانت بفرمایید استغفر تفکر میکروفون اگر جناب دکتر ببخشید میکروفون اگر بتون از بازو نشه مستوانده باش تشکر از بحث بسیار زیبا و و شاهدی برای فرغوشات ایشون که قضیه بر اساس ارفان و مکاشفه است قضیه اوپانیشاد من عبارتی از اوپانیشاد را می‌خونم مختصر و عبارتی هم از لاهیجی می‌خونم که این‌اً هم است و این بطابقت این دوتا آن زمان بر هم یعنی خدا را که از, از... از هر لطیفی لطیف تر است یعنی بعد از خدمت‌مون از شونم جریان الا روشن میشه لطیفتر است و از هر روشنی روشنتر است به یقین تمام این خود میبیند و تعیون جو آتمای جان،, جان او از میان برخی زد و این همه عالم بیشوار خود میشود و او را پیدا کننده نمی نماید و او را مقامی دیگر نمی ماند همین است مکت این خیلی یه مختصری ادامه داره که با حالت عرفان و خدمتون ارز کنم ریاضت به این مطلب میرسن این در اپانی شده. همین مطلب رو ما میبینیم در فرمایش لاهیجیه آنگاه دیدم که تمام، تمامت عالم بعد از یک ای آنگاه دیدم که تمامت عالم از آسمان و زمین و عرش و فرش و غیر یک نور واحد با به رنگ سیاه شدند. و من نیز همین نورم و تمامت کمل اولیا که بودند همه در این نور قرقند. فنای سرمدی یافته فانی مطلق و بیشعور شدم. آنگاه دیدم که حقیقت واحد ساریه در جمیع اشیاء منم. و هرچه هست منم دقیقا همون حرفی که در اوپرنشاد هست در حرف لاهیجی هست ده. یه خورده ادامه داره من نخواستم داماد. وقت رو بگیرم این لاهیجی داماد ملا سدوان بله. بله این لاهیجی شاره فسوسه این لاهیجی اشتباه نگیرید لاهیجی شاره فسوسه که من مناظری رو با ملا عبدالرزاق با چیز با علا سمنانی براتون عرض کردم بفرمایید. بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت اگر بشه بودم دو, دو. دو تا اینکه که, ای که آیت الله خوندن تصور نشه که صرفاً شباهت در وحدت شهودی است، بلکه هر دو قائل به وحدت وجودی افزون بر وحدت شهودی هم هستند این نقطه اول، نکته دوم که فرمودی تکمیل میکنم بحثم رو در خصوص اون فرضیههایی که از ایطالیا و که دارید در خصوص اینکه چطور این مبانی مشترک و دیدگاه های مشترک در زمان ها و مکان های مختلف بدون اینکه رشته تاریخی اونها رو با هم متصل بکنه توسط افراد مختلف در زمان ها و مکان های مختلف مطرح شده اگر نظری غیر از اون فرمایش فعالیت شیطان هم داشته باشید استفاده میکنید میگویند در عالم ادبیات ازش تعبیر به توارد میکنند منحصر در اینجا هم نیست در بسیاری از موضوعات دیگه در مسائل اجتماعی سیاسی تاریخی اقتصادی منطقی ما این نمونه ها رو داریم که یک نظریه تو شرق عالم یه دانشمندی میگه عین همون رو با الفاظ و عبارات دیگر یه فردی معاصر او بدون اینکه اینها با هم ارتباطی از نظر اقلیمی داشته باشند و متأثر از هم داشته باشند دیگران دارن میخوام بگم از این تعبیر به توارد میکنن ریشه این توارد یکی به فطرت الهی انسان برمیگرده که همه انسان ها به خدا معتقدند و بعد فعالیتی که قوه واهمه انسان در تخریب این مسئله فطرت میکنه که تبلیل به همه خدایی میشه جدا باید دکتاری یه دیگه هم مطرح کردند که عزیزان آیا حلول و اتحاد رایج بین صوفیان در قرون اولی از مسادیق وحدت شهود یا نه بله مسلم بله. نکنید حلول نمیگه من خودم میگه خدا حال در منه حال با تشدید <تصفيق> یعنی فرجای گرفته در وجود منه یعنی همون تعبیری که مولوی تو اول مصنوی بیان میکنه که خودش رو یک نی میدونه که نائی خداوند عزبجل خدا داری در امیدمه لذا پر از نوزبالله ذات مقدس خدای عزبجل میشه بسیار سه خشباندم که تصور حضرت عالی از سنخیت چیست؟ خب مسلم سنخیت باطله یعنی شما اگر کافی سری بزنید به کتاب و توحید مرهوم شیخ صدو رضوان الله علی قسمت نفی تشبیه فکر میکنم اونجا شما 100 تا 150 روایت پیدا کنید در چی؟ در عدم سنخیت این آقای بس... علی احمدی از علمای محاصل اسم کامره شن نمیدونم چیه سید قاسم چی؟ سید قاسم علیه سید قاسم بل ایشون یه کتاب خوبی تو این جهت داره که من منزل دارم یه کتابی داره این روایات جمع کرده به اونجا مراجعه کنید حضرت آیت الله چیز در مشهد سیدان در مشهد تو بحث عدم سنخیت مطالب فراوانی دارن کتابیشون تو این جهت داره به اونجا مراجعه کنید زحمت شما رو کم کردن روایات رو جمع آوری کردن شما مراجعه کنید مطلب رو کامل می‌بینید این سوالی که در پایان این سوالی که فرمودن فکر می‌کنه پاسخ مفصلی داشته باشه اما خب اگر می‌بینید می‌تونیم در این زمان کوتاه یه پاسخ مختصری بفرمایید خیلی عالی میفرماند که قاعده الواحد لا استر و المل الواحد همون قصهی که مستحضرید می‌فرمایید که طبقه ده قاعده فلسفی اگر خداوند علت عالم است این کسرت عالم چگونه از علت واحد صادر می شود دقا کنین تو اسمای خدا تو دعای جوشن هزار و یک اسم آمده مجموعه اسمای خدا روایات فرمودن چهار هزار تاست این, روا... این اسما رو من جمع کردم یکی دونش یا علت العلل نیست یا واجب الوجود نیست، اینا تصادفی نیست، حکمت داره. چرا خدا را خالق نامیدن، بارع نامیدن، منیشه نامیدن، فاطر نامیدن، بدی نامیدن؟ درسته؟ اما چرا خدا را علت نگفتن؟ برای اینکه سنخیت علت و معلول تو قاعده علیت هست، در لفظ خالق وجود نداره ما سنخیتی بین خالق و مخلوق قائل نیستیم اگر شما خدا رو علت بدونید ناگزیر از سنخیتی بله بل. الاصدر کل شیء ان کل شیء بله ولی وقتی شما خدا رو علت ننامیدید و از الفاظ دینی تجاوز نکردید که لازمه اینه که اسماهای خدا چیه؟ غیر توقیفیه ببخشید اسماه الله توقیفیه اگر اسماء الله رو توقیفی نامیدید نه غیر توقیفی که حکما و بعضی از متکلمین میگن پس ما نمیتونیم بر خدا اسم علت و للل بکار ببریم یکی از حکمتاش هم به همین برمیگرد نام استاد علی احمدی به میان آمد واقعا در این زمینه همین قصه قاعده الواحد پاسخ های قطعی و مفصلی در کتاب وزین تنزیح المعبود فر رد علی وحدت الوجود که اونجا دلائل اقلی قطعی جنبای علی احمدی ارائه می کنند و الالان هیچ یک از طرفداران وحدت شخصی وجود نتوانستند بر این کتاب یا بر جزی از این کتاب ردیهی بنویسند یا پاسخ علمی بدند یا توجیهی حداقل در مقابلش بیارند نتوانستند و مرحوم آیت الله صافی گلپانی‌دانی رحمت الله علیه بارها این کتاب رو تجدید چاپ کردن و این آخرین سوالی است که محضرتون جناب دکتر عزیز این سوال خودم هست که چرا ما در اسلام از این تعابیر و تعالیم وحدت شخصی وجود نمی بینیم. ما در اسلامی هستیم که رئیس مذهب ما امام جعفر صادق برای عذرخواهی میکنم آداب و تخلی در وسائل شیعه شیخور واجب و حرام کنار فقط مستحبات و مکروهاتش دوازده روایت آورده اونجا این مذهبی که دوازده روایت در مستحبات و مکروعات تخلی داره اگر مبانی و فونداسیون توحید ما وحدت شخصی وجود یا مقوله فنائه ما اقلا باید 500 الی هزار روایت در این مقوله داشته باشیم یعنی سریح و کامل و دقیق هزارات علویت فرموده باشن چون دعوا بر سر توحید بوده چرا ما در اسلام یه چیزی نمی بینیم؟ آخرین و؟ و اگرم برخی از عرفا در این جمع زمین شواهدی رو بیان میکنن اون شواهد یا مال روایات بی سندی است که عرفان عقل میکنن مثلا در آثار سیدیدر عاملی در معجزه در, در کتاب احیال علوم غزالی تو اونجا اومده توجه کردید و منقول از اونجا به مجت البعیزهای فیض و بقیه ای آثار ورود پیدا کرده بلا سند ندونه اونه هیچ کدو میشه و یا روایات متشابه بسیار تشکر میکنم سلامت. از زحماش جناب دکتر قندهاری و واقعا مطالب جناب دکتر عالی و ناب بود لذت بردیم همگی و ممنونیم از اینکه قبول زحمت فرموید و فیز بردیم از بیانات شما تشکر میکنم از عزیزان زمان واقعاً رفت و زمانمون کمه یک استراحت مختصر بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعدی خدمتون باشیم. در جلسه بعدی عزیزان اگه مرحمت بکن سوالاتشون رو پیشتر در کاغذ بنویسن میتونیم بهتر از زمان استفاده کنیم تعجیل در فرج آقا امام زمان روز جمعه است و متعلق با آقا سلباتی اینم بفر